حصل بیست و دوم من و سیدنی که در جهان خیالانگیز و پر تغییر، اواخر کودکی به سر میبردیم بردیم کاری به کار دنیای بزرگترها نداشتیم ما در سنی بودیم که فقط به جهان اشباه و ارواح که در داستانهای پدرم میشنیدیم، وارد شده بودیم بلی در آنجا هم به قدر کافی چیز جالب خون و خشونت و حراس پیدا نمی کردیم. مستخدمین ژاپنی به زودی پی بردند که دیگر شوخی ها و داستان های آمیانه ملایمان ها ما را راضی و سرگرم نمی و وقتی با آنها غذا می برای ما داستان های و دلاوران ژاپنی را می دادند. و با هم در شرح خونخوااری و اادامها که با شمشیرهای سامورایی صورت میگرفت چشم هم چشمی می کردند. فرانک می گفت، آن شمشیر بزرگ را بردارید و یک چرین حرکتی به آن بدهید سر از بدن جدا می شود. در خیابانها سر بیتن ریخته بود. خون همه جا جریان داشت. این یکی از کشدار های دست جمعی ژاپان بود اینطوری میکردند. جورج به موافقت میگفت: گفت آری آری و سپس دستش را مانند دست جلادان حرکت میداد داد و سپس هر دو دست را به هوا می برد و می گفت سر از تنش جدا کنند اینطوری فرانک به همراهی جورج و کی به شرح جزئیات این صحنه ها می پرداختند وقتی خیشاوندانشان هم بودند هر کدام به نوبه خود مطلبی در این باره اظهار میکردند. از شرح اعدام به نقل داستان های دیگری میپرداختند که خون را در بدن آدم منجمد میکرد. من و سیدنی از آنها دائما این گونه مطالب را بیرون میکشیدیم و همه این داستان ها را از داستان اربا و اشباه گرفته تا کشتی چالاک ژاپنی به نام سومو با ولع گوش میکردیم. بعد این داستان ها را به پدرم میگفتیم. همیشه با علاقه به ما گوش میداد و از اینکه ما به دانستن داستان و رسوم نجات های دیگر علاقه مندیم، لذت میبرد. اما وقتی به داستان کشتی گیران سوما می پدرم نمی توانست آرام بماند. می آری من آنها را دیدم خیلی گنده هستند دو متر قد دارند با شکم بزرگ خیلی زور دارند. بعد پدرم که قدش در حدود سد و هفتاد سانتیمتر است و هیکلی نسبتا باریک دارد، ناگهان تبلیل به کشتی ژاپنی میشد. اول به اصطلاح دستش را در نمک می زد و به هم میمالید غوز قوز می کرد و می کمربند خودش را بگیرد و از زمین بلند کند. بعد دور دایره خیالی می شرخید و حرکات رسمی کشتی گیران را در شروع کشتی تقلید می کرد. بعد با حریف خیالی گلاویز می شد چشمانش با چنان حالت وحشتاوری می درخشید که پشت ما را به لرزه میانداخت. پدرم آدم ریزه است اما وقتی به کشتیگیر جاپانی مبدل میشد به وضعه ترساوری بزرگ و عظیم می نمود مثل اینکه تمام اتاق را حیکل او پر کرد بعد از آنکه کشتی سومای ژاپنی را برای ما نشان می داد و نقل می کرد، به شرح هایی که در سیام دیده بود می پرداخت می گفت آنها با پا به هم لگت می زنند و ناگهان به کشتگیر سیامی مبدل می شد فقط آن را با چنان حرکات هنرمندانه بیان می کرد که تبدیل به نوعی رقص می شود. پدرم به هوا می و پاهایش را با کشیدن فریادهای کوچکی در هوا تکاد می داد همه ی حرکات او ساده به نظر می آمد. اما وقتی خودمان می خواستیم همان حرکات را بکنیم در میافتیم که چقدر مشکل و تقریبا غیر ممکن است. ما هرگز نمیتوانستیم رو دست پدرم بزنیم. هر داستانی برای او میگفتیم او ترتیبی میداد که یک خورده بهتر از ما آن را بیان کند. نه اینکه ما کوشش نمیکردیم. ما از مغازهی آن طرف خیابان مدرسه مجله پلیسی و جنایی میخریدیم تمام مقالات علمی و داستانهای عجیب و غریب آنها را میخواندیم تا چیزی پیدا کنیم و بتوانیم پدرم را با آن غافلگیر نماییم. بالاخره در یکی از تعطیلات آخر هفته خیال کردیم در این کار موفق شدیم. این مطلب که پیدا کرده بودیم پشت ما را لرزاند و ما گمان می‌کردیم همین اثر را بر روی پدرم هم داشته باشد. سرپا بند نمی شدیم. و توانستیم امیدوار باشیم که حتما مورد توجه پدرم قرار خواهد گرفت. البته مطلب درست یادم نیست ولی وقتی آن را گفتیم و تمام کردیم پدرم ظاهرا تحت تأثیر قرار گرفته بود. پدرم گفت: «آه خیلی جالب بود و سپس در حالی که دستهایش را به همیمالی مالی حالا گوش کنید چیزی برایتان بگویم که من و دکتر ریننلز به اتفاق هم انجام دادیم. کافی بود که پدرم اسم دکتر رینولدز را بیاورد و پشت ما از اندیشیدن به داستانی که هنوز نشنیده بودیم، به لرز بیافتد. پدرم شروع کرد: یک شب که شماها در مدرسه بودید، دکتر یک درس جالب از تشریح بدن انسانی به یکی از مهمانان من داد. فلفور جادوی بیان پدرم ما را وارد حزیه کرد. در عالم تخیل، خودمان را در اتاق ناهارخوری به وسیله ی دو شم نیمه روشن شده بود تصور کردیم دور بر میز گروهی مهمان نشسته بودند دکتر و پدرم بالای میز جای داشتند کنار دکتر چیزی روی یک تخته بزرگ که زیرش چهار زده بودند دراز کشیده بود این چیز البته یک جسد انسانی بود از این به بعد پدرم باقی داستان را با نمایش نشان میداد. و خودش در این نمایش هر لحظه نقش یک نفر را به عهده می گرفت. الان در نقش دکتر است. با ابهت و مهارت انگشتانش را دارد توی دستکش جراحی خیالی می کند. دست‌هایش را در هوا تکان می‌دهد و به دقت با حوله خیالی پاک می‌کند. یک چاقوی جراحی خیالی برمیدارد و جسد نامرئی را به دقت می شکافد. اعضا و احشای جسد را یکی یکی در میآورد. قلب، مغز، کلیه، ریه، معده و زبان را دانه دانه جدا می کند. هر کدام را به دقت نگاه می دارد. انگار که زیر نور شام دارد درباره عمل جراحی خود کنفرانس می دهد. پدرم از دکتر رینولدز مقداری اصطلاحات طبی یاد گرفته بود. همانطور که دکتر از پدرم چیزهایی درباره فن نمایش یاد گرفته بود. بعد از این رانی مختصر، پدرم در نقش دکتر ری اعضای جسد خیالی را دست به دست رد می کند. پدرم ناگهان در نقش خود ظاهر می شود و عضوی از بدن مرده را از دکتر رینولدز می‌گیرد. می گیرد. چهرش همان حالت مهربان آشنا را دارد. سپس آن را به بغل دستی خود رد می‌کند. همینطور که عوض خیالی جسد دست به دست دور میز می پدرم به نوبت در نقش یکی از مهمانان ظاهر می شود یکی کنج است دیگری از خود شجاعت و شهامت نشان می دهد خانومی رقیق است و بالاخره شعی خیالی دوباره به دست دکتر رینالز می رسد که آن را با دقت به کناری می گذارد و توده نامرئی از اعضای جدا شده جسد جلوی خود می‌سازد. وقتی پدرم این نمایش را به پایان رساند، من و سیدنی چشمانمان از وحشت گرد شده بود. پدرم اکنون وانمود میکرد می‌کرد که دارد دستهایش را می‌شوید و گفت: خب چارلز، تو و سیدنی و من و دکتر یک شب چنند شامی با هم خواهیم خورد. خوشتان میآید؟ من و سیدنی زبانمان بند آمده بود و او را خیره مینگریستیم. پدرم که قیافه تردید آمیز و وحشت زده ما رو دید، بلند خندید و گفت، این فقط یک داستان خیالی بود. قصه ترسناکی بود که برای مقابله با قصه شما گفتم. با وجود آنکه پدرم اعتراف کرده بود سراسر داستان او خیالی است، این زیافت شام وحشت در تصور من پابر جامانده بود. مدتها نمیتوانستم بدون ترس و لرز از اتاق نارخوری آنجا که جسد خیالی در داستان پدرم قرار داشت بگذرم. همه چیز در خانه پدرم چنان جذاب بود که من و سیدنی از رفتن و ماندن در محیط خسته کننده بلاک فوکس تنفر داشتیم. وقتی که اصر یک شنبه و ساعت رفتن به مدرسه می رسید، اوقات ما تلخ می شد. بعد پدرم بحث می میکرد که ما را به سر خلق برگرداند. او میگفت، خب بچه شما خیلی خوشبخت هستید. مثلا خودتان را با من مقایسه کنید. من وقتی به سن شما بودم گرسنه و برهنه در خیابانها میگشتم. حالا شما اینجور قصده ها را ندارید. در آمده ثابت و خانه دارید و سه وعده غذا در شبانه روز میآید. مدرسه رفتن. من هرگز امکان آن را نیافتم که از کلاس چهارم بیشتر تحصیل کنم. پس بدانید که خوشبختید. وقتی پدرم درباره کودکیش اینطور حرف میزد من با علاقه به زندگی به مدرسه میرفتم. خوب درس میخوااندم و از هر فرصت مناسبی استفاده می کردم. وقتی میخوابیدم به حال کودکی پدرم رقت می آوردم. اما فردایان روز تمام تصمیمات قاطع من باد هوا میشد و باز خود را در محیط سخت زندگی نظامی محدود میافتم. تصویر رقتنگیز پسرک ویلان کنینگتون از نظرم محف می شد و مزحک اینکه به آزادی او طرز نان پیدا کردن او راه یافتنش به تاتر به تسلطش در این فن قبطه میخوردم و کسی هم نبود که به من بگوید چه کنم. دوشنبه ها کسل کننده بود. همه بچه های مدرسه را کسل کننده می دانستند. زیرا بعد از آزادی تعطیل آخر هفته تحمل آن دشوار بود. از هیچ چیز روز دوشنبه خوشم نمیاممد. نمیدانم سیدنی هم همین احساس را داشت یا نه. آخر من و او از لحاظ شخصیت خیلی از هم دور بودیم و در این حال به عنوان دو برادر خیلی به هم نزدیک بودیم. رفتارمان در مدرسه با هم تفاوت داشت. من در درجه اول رفتارم را چنان تنظیم کرده بودم که مبادا شب تعطیل هفتگی در مدرسه بازداشتم کنند و نگاه هم دارند و برای این منظور کارو در درس هم بود و به زودی به عنوان شاگرد نمونه شهرت پیدا کردم اما برای این رفتار نمونه بهای سنگینی می پرداختم در تمام روزهای هفته که در بلاک بودم عصبی و تنخو و زیر فشار روحی به نظر می رسیدم. اما سیدنی به هیچ وجه زحمت آن را هم به خود نمیداد که شاگرد نمونه باشد. او برای خودش خوش بود و هنوز بزرگترها را به مبارزه میطلبید. گمان میکنم سیدنی نمیتست جلوی خودش را بگیرد. دائما سرکشی سرکششی می میکرد و همه چیز را به شوخی میگرفت. یک بار وقتی معلمی خواست به دست او چوب بزند به جای آنکه آرام دستش را بگیرد و کتکش را بخورد و بعد هم فوری آن را فراموش کند بدون خجالت خود را به زمین انداخت و به خود میپیچید و نعره میکشید و با ناله و گریه می گفت مرا نزنید اعتراف می کنم اعتراف می کنم معلم نتوانست جلو خندهاش را بگیرد اما سیدنی کتکش را خورد تابیخ هم شد از اول تا آخر هفته آنقدر توبیخ میشد که آخر هفته در مدرسه نگهش می‌داشتند. گاهی اوقات به نظر من می رسید که سیدنی تعطیلات آخر هفته را بیشتر در مدرسه می‌گذراند تا در خانه. اگرچه پدرم هرگز از ترس کم شدن قدرتش احساساتش را آشکارا با ما در میان نمی‌گذاشت، معلوم بود که از بازداشت سیدنی قصه‌دار است. چون دلش می‌خواست ما را با هم ببیند. در موقع خوابیدن من جای سیدنی را خالی می دیدم. تنها در اتاقم میخوابیدم و فقط تخیلات همدم من بود. اولین شبی را که این تخیلات به سراغ من آمد به یاد دارم. شبی دل بود و باد سخت کالیفرنیا در بیرون می وزید. صدای خوردن شاخه های درختان به پنجره اتاق به گوشم می رسید. یاد سیدنی در بسترش در بلک افتادم. درباره پدرم و پولت که در اتاق دربسته خودشان و مستخدمین که در طبقه پایین در قسمت خودشان بودند فکر کردم احساس کردم از همه کس دورم و به هیچ کس دسترسی ندارم بعد به یاد تپانچه پدرم که در کشوی پاتختی او بود و شمشیرهای سامورایی که در گنجچه سالان آویخته بود افتادم در خیال می‌دیدم که این دو شمشیر منحنی و تیز در لاک لاکساده خود کنار هم جای دارند. پدرم اغلب به من می گفت، با آنها بازی نکن، حتی به آنها دست نزن. ممکن است دستت را ببری یا قطع کنی. درباره دستورهای او و تنفر او از نافرمانی دوباره راجب شمشیرهای سامورایی می‌اندیشیدم. با احتیاط به طرف در اتاق رفتم و آن را باز کردم و نگاهی به سرسرا انداختم. همه جا و همه چیز آرام بود. با عجله از سرسرا گذشتم و از پله ها پایین رفتم. در سرسرای پایین این خانه تاریک و اسرارآمیز تنها ایستاده بودم. کلید برخ را کورمال یافتم و چراغ را روشن کردم. حالا سرسرای پایین روشن شده بود. پا به رحمه به اتاق نارخوری دویدم. از در باز سالن گذشتم فکر میکردم که الان جسد خیالی دکتر رینولدز در آنجا دراز کشیده است شاید هم برخی برخیزد و جلوی مرا بگیرد به سالن رسیدم چراغ را رو روشن کردم و به طرف گنج رفتم ترس سر و پایم را گرفته بود نفسم به زحمت در میآمد در گنج را باز کردم این شمشیر بزرگ در دست یک سامورای غول پیکر له خوبی برای اعدام بود. اما در دست کوچک من بزرگ مینمود. انگشتانم دور قبضه شمشیر کوچکتر پیچیده شد. آن را از غلاف بیرون کشیدم و غلاف را در جای معمولیش گذاشتم. به این ترتیب هیچکس نمی توانست بفهمد که شمشیر در جایش نیست. در گنج را بستم و بعد شمشیر را با انگشتم امتحان کردم. بعد چند بار شمشیر را بالای سرم به اهتزاز درآوردم ناگهان احساس امنیت کردم با چنین اسلحه‌ای زور کی به من می رسید. چراغ سالن را خاموش کردم و با تاریکی ناگهانی قلبم فرو ریخت شمشیرم را در جهت اتاق نهارخوری به سوی جسدی که در آنجا کمین کرده بود تکان می دادم. بعد به عجله به سرسر سر رفتم که از ها بالا بروم اگر پدرم مرا با آن شمشیر برهنه دوان دوان می دید چقدر جا میخورد. چراغ چراق سرسرای پایین را خاموش کردم و از به سرسرای بالا رفتم و بالاخره به اتاق خودم رفتم در اتاقم را بستم و قفل کردم به رخت خواب رفتم شمشیر را روی میز کنار تختم گذاشتم و تقریبا بلافاصله به خوابی امیغ فرو رفتم صبح زود بیدار شدم و شمشیر را بیان که کسی متوجه برداشتن آن بشود سر جایش گذاشتم اگرچه آن شب آخرین شبی نبود که من شمشیر را نزد خود نگاه داشتم اما هیچکس به کار من پی نبرد